وصلم دوای شروعی درسی است که رب بشرح لی صدری ویسر لی امری و حلل عقده تام لسانی یفقه ای در آغاز درسم خوب است وقتی امتحانم وقت کلامی دعا را بخوانم ان شاء الله خداوند همراهمان کمک میکنه که از اشتباه دور باشم درس امروز ما شما درباره نقش ایمان در زندگی است تقریبا یک 4 ما 5 پیش یک جای من دعوت شدم و اونجا یک کسی بود که از هلند آمده بود به افغانستان و در کدام مؤسسه کار می‌کرد و این آدم دانشمند و لایق بود کلاسات بعضی از افغانها که همراه از اونا کار میکردند، از ما دعوت کردن که من همراهی دانشمند هلندی سوالایی که داره و سوالایشان پاسخ بگویم امروز که رفتیم به خانی از اون‌ها او افغانهایی که همراه از اون‌ها جرا بحث کرده بودن و بالاخره از ما تقاضا کردند که من درباره اسلام برشان صحبت بکنم و ناورم گفتن که اساسی ترین سوال این شخص است ای که اونا پرسان میکنند که نقش ایمان در زندگی چی هست مثلا درست است که شما مثلا دینداری و ایمانداری را به حساب آخرت بحث میکنین لیکن شما بر ما بگوید که خود ایمان در زندگی انسان چی نقش داره آیا ایمان برما با صحت ما با آرامش ما کدام فایده داره و اگر من ایمان نداشته باشم چی نقص می‌کنه خب باقدمهی صحبت که امرا از اون صحبت شروع کردیم باید جواب مکمل بر از که ایمان در زندگی از اون چی تاثیر داره به خاطر ازی که وقتی یک انسان بگه که مثلا ایمان در زندگی من تاثیر داره تاثیر مثبت داره برن ایمان اختیار میکنه اگر یک نفر بفهمه که سپورط برای جسم ما مفید است، سپورت میکنه. اما کسی که نمیفهمه میگه چی کنم سپورت <تصفيق> یک نفر میفهمه که اگر من تحصیل بکنم، تحصیل برای زندگی من، برای حیات ما بسیار خوب است، مؤثر است، مفید است. برای هم تحصیل میکنه. اما اگر فایده تحصیل را نفهمه، میگه مردم دیوانه هستند، پانتون پا میخونه. برو کار کو، دکانداری کو، پول پیدا ایناله در عربی یک ضرب المثل است میگه کلن عدو اون لمجهلو هر دشمن چیزی است که او را نمیشناسم اگر انجنیری رو کس نشناخت فویدی انجنیری نشناخت دشمن انجنیری اگر کس کامپیوتر را نشناخت میگه چی به درد میخوره شما وقت رو زایع میکنین میرن یک هزار دلار را 50000 افغانی را میرن کامپیوتر میخرن بسیاری کس وقتی میگه من کامپیوتر 5000 هزار پیه گرفتیم میگه تو احمق هستی چی به درد میخوره کامپیوتر چرا و بخاطر خاطر این ملامت نیست که اونا منفیتو کامپیوتر نمی‌فهمن یک کس دیگه رو می‌بینی دشمن اینترنت است اچ اینترنت باید استفاده نشه ولی علت مشکلی که چی است که از اینترنت استفاده مثبتش یاد ندارن نمی‌فهمن به همین شکل تمام چیزهای دیگه هم هست اینا له مردم چرا دین رو میکنن؟ چرا نمیخوان که دیندار باشن؟ علت اساسیش چیست؟ علت اساسیش چیست که دین نمیشناسه و یا هم نقش دین در زندگی خود درک نمیکنند. و حتی به سری وقتها ما مسلمان ها امروز وقتی که بینیم که بعضی مسلمان ها از دین روگردان هستند ولی برعکس از اون می‌بینیم که مردم غرب مسلمان میشن و کتابا نوشتن میکنن و خودشان دعوتگر به اسلام میشن علتش چی است علتش چی است که او نفر غربی در جستجو هست پیدا میکنه که دین چی نقش داره در زندگی ما و ما چی کمبوداتی در زندگی خود دارم که متاسفانه در بیدینی و کمبوتات هست و با دینداری و تکمیل میشه این ما چی میکنیم این حال ما بخاطر ازی که این انسان غیر مسلمان رو پس بس ضرور است که ما خود ما که مسلمان هستیم باید اول نقش ایمان رو در زندگی خود بفهمیم. و پیش ازی که ما نقش ایمان رو در زندگی بفهمیم، بفهمیم که ما چی ضرورت داریم چی نیازها داریم چی مشکلاتی داریم در زندگی چی چیزها باید داشته باشیم که اگر را نداشته باشیم دین ما درست نمی باشه. اگر داشته باشیم ما انسان خوب می باشیم. و اگر من دیندار باشیم، می‌خوایم یکس سوال می‌کنم. خب، اگر من دیندار باشیم چی فایده میکنم و اگر دیگر میگه خب، اگر من بدون دین هستم، می‌گویم دین ندارم. چی نقص کردیم؟ پس اول ما شما باید اول امتلاع و سرش بحث بکنیم که ما قدرمتن که انسان چیزهای رضایی داره. ما سر تخت نوشته کردیم که انسان ضرورات های فردی داره و ضرورت های اجتماعی داره. الیال ضرورت های فردی و ضرورت های اجتماعی و باز اینجا یک چیز دیگه هست کتاب تان نیست که باز اون همیشه پس پاسش بحث بکنیم ضرورت های عالی هست. ضرورت های فردی چی میگن؟ ضرورت های فردی اون ضرورتهایی است که انسان من حیث فرد به اون نیازمند است. اگر ما جنص منایس یک far این چیز ها را نداشته باشیم، در زندگی مشکل می داشته باشم. انسان ضرورت داره با جامدات انسان ضرورت داره به مایات انسان ضرورت داره به گازات و انسان ضرورت داره با جنس بنا این از کل ضرورت های فردی انسان که ما شما اینو اینجا یادداشت گرفتیم انال مایات جامدات گازات و جنس از ضرورت های انسان است اینمی ضرورت ها که انسان داره های مادی گفتنمیشن ما شما یک یک همین یعنی قسم سر ازی میم و باز پرسون میکنیم که در بخش فردی در بخش مادی، معنوی، اجتماعی و عالی دین چی نقش داره آیا دین در بخش مادی نقش داره؟ آیا دین در بخش معنوی نقش داره؟ آیا دین در بخش اجتماعی که ما در جامعه زندگی میکنیم؟ خب های مادی، مایا، جامدات، گازات و جنس ضرورات های معنوی، آرامش معنوی، داشتن هدف در زندگی پاسخ به سوالاتی است که این وابسته به شما میشه در ضرورت های عالی هم بگوییم. سوالاتی که مثلا از کجا اومدیم، کجا میریم، هدف زندگی ما چیست است، نهایت چی میشه. و بخش اجتماعی است که ما مثلا ضرورت داریم به فامیل، ضرورت داریم به مکتب، ضرورت داریم به قانون، ضرورت داریم به عدالت، ضرورت داریم به امنیت. این عالی هست و بخش آلی رو که اینجا این چه پاسخ به سوالات عالی میگیرن میگن که سوالات بسیار عالی است که انسان وقتی که از ضرورت‌های مادی و معنوی خلاص میشه برش سوالات عالی پیدا میشه که من از کجا آمدیم کجا میرم چرا زندگی میکنم چرا درس میخونم آیا کل زندگی من اگر یک aksident شود در بیرون و من بمرم کل زندگی من ختم میشه آیا زندگی دیگه هم وجود داره آیا کارهای نیکی که در دنیا میکنم نتیجه‌اش رو در آخرت خود دیدم نتیجه رو در دنیا می این سوالات بسیار زیاد است که بسیاری کسایی که از زرورتهای فردی و اجتماعی خلاص شدن این سوالات برشان پیدا شده آل سوال پیدا میشه اگر من از شما این سوال بکنم که دین جوابگوی کدام نیازمندی ها و زرورت است؟ زرورتهای فردی را جواب میگه دین اجتماعی را و یا زرورتهای عالی را کدام میشه؟ دین جواب میگه از زرورتهای مادی مثلا ما شما گرفتیم ما دین مقدس اسلام در بخش مایات برای ما چی میگه؟ و در بخش جامدات چی میگه؟ و در بخش گازات چی میگه؟ اینجا یک فرمول داره که ضرورت های مادی را جمعه با رهنمایی مثبت دین مقدس اسلام خب بر ما اسلام فرمول میده که شما عزیز ضرورت های مادی کلشان استفاده بکنید. عدیان چند قسم داره ب... فعلا در دنیا چه چی قسم اندشه هاست بعضی بعضی‌ها به نظر هستن که اگر ما متدین باشم باید ترک دنیا بکنم و این عقیده در مسیحیت است و این عقیده در هندویزم است در هندویزم یک نفر که می‌خواد که متدین باشه باید تمام خواهشات و مادی و کل چیز خدا باید چی کنن؟ فراموش کنه بره قرار در یک مندر اونجا زندگی بکنه حتی لباس درست نپوشه غذا خوب خوب نخونن. در بس که اگر یک نفر میخواد متدین باشه باید چی بکنه؟ او بره خانه در کلیسا یا خود راهب بسازه یا راهبه بسازه. راهب, راهب چی نه کسی که جوانی که ترک دنیا میکنه و راهبه یک دختر جوانی که ترک دنیا میکنن ازدواج نمیکنن زندگی در بین جامعه خلار مینه در بین کلیسا 24 ساعت زندگی میکنن. اما در دین مقدس اسلام این قانون رد میکنن. اسلام نمیپذیره این اسلام چی میگه؟ اسلام میگن نه شما باید از تمامی این چیزهایی که ااصل استفاده بکنین لكن بر ما فرمولشم تا فرمول که فرمول چیست که ضرورت های مادی جمع رهنمایی مثبت دین مقدس اسلام اینجا جشا میکنیم مساوی ب چی میششه مساوی میشه و سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت خب این فرمول اسلام بر داد اینال یک کسی میگه میگه که خب امی فرمول رو که اسلام برما داد که سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت و رهنمایی مثبت چی مانا رهنمایی مصبت؟ بگیم که مثلا در, در اینمی مایات و جامدات و گازات و جنس اسلام رهنمایی مصبتش چی مانا؟ رهنمایی معناش مانای است که میگه بعضی چیزها را بخو بعضی چیزها را نخو. بدان در اسلام چی است؟ امر است و نحی است. اینی کارا را بکو و اینی کارا را اینی را راهنمایی مثبت دین مقدس اسلام میگه خب یک کسی آمد برم میگه که والا استاد این شما چی میگه راهنمایی وای ضرورت بنیه راهنمایی مثبت دین نداره. خب وقتی که را ره به رهنمایی مصبت مثبت دین نداریم قرآن از ایشون جواب از کیسا چی میگن میگه وا من اعرض عن ذکری فان لهم معیشه ضنکه هر کسی که از قوانین ما از احکام ما سرپیچی کرد خداوند متعال میگه ما برای یک زندگی سخت را نصیب میگیری زندگی سخت به نصیب میگم چطور حال مثلا وقتی که من دفعه یک کامپیترم کار میکنم عقل ما برای من میگه که اینمی کمپیوتر کسی که ساخته ای بر من گفته که وقتی تو میخوای کمپیوتر چالان کنی باید از استارت چالان کنی یک کسی میگه نه من میخوایم میره از شد چالان بکنم هرقدر که کلیک میکنه پس گل میشه پس ما انسان ها که هستیم کمپیوتر های ساخته کی هستیم؟ ساخت خدای عزیز و جل. وقتی کامپیوتر یک انسان ساختم مجبور اس ما قانون و انسان انسانه، یعنی کامپیوتر که بر ما کدوم سی دی ها رو اینستال کدام برنامه ها باید در کامپیوتر باشه؟ آنتی ویروسش چه قسم باید باشن؟ باید آنتی ویروسش همیشه آپدیت بکنیم تا که کامپیوتر تو درست کار بکنه؟ چند جیبی بی داره؟ کدوم مثبت است؟ کدام فایل, هست؟ کدام فایل خراب است؟ کی کار تمام وظایفی که این کامپیوتر داره و انجام می‌ده بر ما اونم شرکت و کسی که برنامه‌ریزی میکنه بر ما بیان میکنه. انال اگر ما اوامر و قوانین Azure کماندهایی هایی که بر ما داده میشه در برنامه های کامپیوتر مطابق ازو کار بکنیم کامپیوتر ما کار میده اگر نکنیم بر ما کار نمیده کامپیوتر ویروسی میشه دیگه روزی میبینه که کل فایل ها از بین رفتن و هیچ کاری انسان وقتی که یک کامپیوتر ساخت خدای عزوجل است خداوند همه که تو باید همیشه در بین ذهن تو سدیه احکام خداوند که این آنتی ویروس های خارجی هست اینه باید در داخل ذهنت انستال کنیم ای کارا با که کارا کاره, کاره نکو. و همیشه باید سیدی تو با خاندن پنج وقت نماز با عبادت ها رفتن در مسجد همیشه باید چی کنی؟ همیشه باید عبدید شد با مطالب قرآن همیشه باید 24 سات این ذهن تو آماده پذیرش احکام خداوند و تطبیق احکام خداوند باشه و عبدید شدگی باشه تا که شیطان ها شیطان یعنی ویروس ویروس کامپیوتر. اونا ویروس هست، او هم دفعه چن میگن ما شما وقتی که از بین بریم، و شیطان ما و شما که های انسانی و جنی هست. الان خداوند مطال جل جلو برای ما احکام داده تا که ما از این احکام استفاده کنیم زندگی بسیار خوب نورمال باشه باشه. خب در در قسمت غذاها اسلام چی میگه؟ در در قسمت جامدات مثلا در جامدات غذاها شامل میشن، لباس شامل میشن، وسایلی که ما و شما ازش استفاده میکنیم شامل میشن، کامپیوترو موبایل و وسائل تلویزیون و رادیو که داریم در کل, کل ازی شامل جامعه داده است دین مقدس اسلام چی میکنن؟ دین مقدس اسلام در کل ازی بر ما توجیه مثبت میکنن از فلانی غذا بخو از فلانی غذا نخو از فلانی لباس ها برش فلانی لباس نپوش. یه دین مقدس اسلام بر ما میگه اینال ما مسلمان ها وقت تا وقت که احکام خداوند در سر خود تدبیر کردیم در غذاها و در لباسها و در وسایل اونمو حدی وسطیره که باید از او استفاده بکنیم استفاده کردیم زندگی نورمال میداشته باشیم ام در دنیا خوشبخت استیم ام در آخرت یک چیز مردم گفتن که والا ما نیاز نداریم به این چیز به این رهنمایی مثبت ما میخوریم گوشت پشک هم میخوریم گوشت خوک هم میخوریم، گوشت حلال نشده رو هم میخوریم، هر چی که دل ما شد میخوریم. از این خاطر خداوند مطال گفت که وقتی که شما از احکام سرپیچی بکنین، قبل از که در آخرت برین در دنیا زندگی سخت نصیب شما میشن. از این خاطر کسانی که از گوشت خوک استفاده کردن، بالاخره کشف کردن که امراض بسیار خطرناک از گوشت خوک به انسان چی شد؟ انتقال. بالاخره دکترها گفتن که 200 درجه همین مکروب هایی که در خوک از گوشت خوک از 80 درجه حرارتی از بین نمیره رن با وجود انسان انتقال میکنن مرض سارس که خطرناکترین مرض بود من قضیهات نمی فهمم بعضی دکترها در دا بعض از گزارشات مشهودیم دیگه او همیشه شما از دکتر متخصص بپرسون کنیم گفتن که برادر مرض سارس از گوشت پشک, پشک با چینایی ها انتقال کرد و من اعرض ان ذکری فان له معیشه ظنک اقتصاد فامیل شما را که ضربه میزنه ضربه ای میدونه که شما از موبایل به ایواز که استفاده مثبت بکنین بر وقتتان استفاده بکنین شما با موبایل وقتتان را زایی میکنین شما ایواز از که از موبایل در موبایلتان قرآن شریف و اینستال بکنین او بگذارین استفاده بکنین از او. شما میخورید تصویرهای ذشت در موبایلتان استفاده میکرین بناهای چی میشه؟ بناهای اینمی استفاده غلط شما از موبایل شما نتیجه چی میشه که شما زندگیتان بسیار خراب میشه اقتصادتان خراب میشه اقتصاد مملکتتان خراب میشه شخصیت خودتان خراب میشه و گناه ها و بدبختی ها مبت اگر از این استفاده منفی بکنیم. چرا لباس خصم بپوشم گفتن که مثلا انسان باید لباسهای با عزت بپوشه. اگر لباس خوب پوشیدی شخصیت تپس میشن زنا چرا حجاب بکنن دخترها چرا حجاب بکنن بخاطر خاطر از که زن در اسلام مقدس است مادر مقدس است جنت زیر پای مادر است خواهر مقدس است همسر مقدس است 50 فیصد ایمان انسان با داشتن همسر تکمیل میشه از این خاطر ای همسر این انسان مقدس این خانم مقدس در اسلام به خاطر از که هدف باشه وسیله نگردد دست مردها باید لباس مقدس بپوشه کوچی حجاب هجام. اگر قدسیتی لباس تر کردن بعضی کسا گفتن نه ما هجاب نمیپوشیم دیدیم که دخترها و زنهای اروپایی وقتی که لباس درست نپوشیدن فعلا ما شما ببینیم اونا وسیله هستن در دست مردها شخصیت ندارن اسلام وقتی که زنهای با شخصیت بر ما تقدیم کرد زنهای مثل بیبی بی خدیجه زنای مثل بیبی عایشان، بی بیبی فاطمه، بیبی بی زینبه بیبی بی مریم حتی در قرآن عظیمشان ما می‌خوایم که قرآن عظیمشان می‌گه که ای مردها، ای زنهای مسلمان، شما بیبی بی مریم و خانم فرعون الگو در زندگیتان قرار بدن. ها ما می‌خوایم از برخورد من یک مرد چطور یک زن بخیزم الگو و نموری مثال در زندگی خود قرار بدم؟ پس که می‌خوایم که واقعاً بیبی مERYAM شخصیتی داشته که از هزاران مرد امروزی, امروزی که ل شخصیت ازو قویتر خانم فرعون در مقابل 500 پول دارایی مال فرعون پادشاه ما برای 500 جوره لباس می داد میگه من برا 3 کیلو طلا میخرم خرم لکن اون میگه ربی بني عندك بيتا في الجنه خدایا من فرعون کار ندارم برامد در جنت یا خانه خدایا بده اوه ما مردای ما در 500 دلار 16 قسمتان میبردند اسنیس او که در مقابل طلا پیزه هیچ چیز با همت عالی که داره غلام همت والای با خار کشم که بار خار کشد و منت دونان نکشد آیا ما از او خاطر خداوند من مگه که تو شخصت اومر بیمی بی و زنه که فرامون برش مگفت یا عزیزم تو بیست هی که بی بی لباس را یعنی 500 قسم لباس آخرین استایل بر گرفتیم خانم فرامون بگفت کار ندارم میمانی که کاکایتا مامایتا دامات خوهرتا دامات مامایتا پایوازی که من برش برد یک هزار نفر غذا تهیه میکنم خانم فرعون فرعب ببنی لیا این بتا بیتا فلجنه و من فرعون و عملی هیزی انسان ماتریالیست ماده پرست خدای من نجات بده. از خاطر بر ما قرآن بیا که شما زرب المسلتان شما, نم شما نمونه مثالتان در زندگیتان این مردها و این زنهای مسلمان شما خانم می ها نبیگیرین و این قسم بیبی بی آسیه را بیبی بی آسیه را الف مت سینیا اگردک آسیه دیست اگر به عین کوباس اونام درست نیست آسیه الف مت سینیا اگردک و شما نمونه مثالتان بیبی بی مریم بگیرین بی و سوری بنام بیبی بی مریم آمدن اوی بیبی بی مریم یک دختر جوان چه شخصیت داشت شخصیت عالی داشت که در مقابل یک لشکر خطرناک از یهودی ها مبارزه میکرد افت خدایی حفظ کرد شخصیت خدایی حفظ کرد بیبی مریم در مقابل یک لشکره شما اگر اون فلمک بیبی مریم ایده باشد نه علمه های یهود سعیف که سهل کنین که چی سرش تومت میکنن از آراشی هست باز هم از عزواجل او را براعت میتن فاهمیدی میره؟ این حال در بخش جامداد پس ما شخصیت یک انسان که آیا من یک مرد هستم شخصیت من مثل شخصیت فاید مثل شخصیت از اونا آوره باشه این خاطر دین مقدس اسلام با احکام خود وقتی که جوانای مسلمان شخصیت خدا مثل از اونا آوره ساختن کسایی بود که سرش بسیار خرد بود جوانای بسیار سنایشان کم کم بود لکن شخصیتشان بسیار عالی بود پیغم بستان وقتی که سفیر مقرار میکرد، سفیر مقرار میکرد به به مدینی منواره کیر روان می تو تو رو می صاحب ابن تو یک جوانی هستی 18 ساله ها کلی میگه این جوان 18 ساله روان میکنی چرا جوان 18 ساله پیامبر صلی الله و علیه و salam براش رو میفرستن که اینمی جوانه که سنش خرد است شخصیتی بسیار عالی داره که شخصیت عزیز میتونه که این یک دعوتگر بسیار خوبی بر اسلام باشه یک دیگر روز حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلام راهبر عمومی به قواتهای خود به طرف روم میگه که یک کس را به صفت جنرال معرفی بکنه کی هست کی هست اسامه ابن زه. چند ساله هست 18 ساله از این خاطر دینم قدس اسلام بر ما درس میده که گد سر از این نیست که سر بسیار کلان است یگه این رشتفیده 60 ساله است که که سیگوری کتی که گپ بزنی لوده لوده برد گپ میزنن میفهمی که خود 60 ساله است لیکن دماغش 15 ساله اما یک وقتی یک کس دیگه ببینه که خودش 18 ساله یا 20 ساله است، لاکن وقتی که مغزش کنترل میکنی می‌بینی که مغز از این اندازه 60 ساله است. از خاطر اینی جوان 60 ساله‌ای که پیغمبر خدا او رو تربیت کرده، منیس اسامه ابن زید، این میتونه که قومندار عمومی و رهبر عمومی مسلمان‌ها دری معرکه باشه. اما او اما بسیاری وقت‌ها ابو جهل و ابو لهب با وجودی که سن سراشون بسیار کلاں بود، اما شخصیت بسیار ضعیف داشته. در حالی که ابو, ابو لحب یا ابو جهل ابو لحبی سهار افتخار میکد که ما هاشمی هستم ما عربی هستم ما از قوم پیغمبر هستم ما این شخصیت دارم اینه دارم اینه دارم خداوند مطال آیت قرآن نازل کرد گفت که سیس لا نارن ای ابو جهل ای ابو لحب دا کجا داخل میشن؟ آتش در داخل میشن بنان این که تو هاشمی هستی و تو قراشی هستی و تو از قوم پیغمبر هستی اینا که ابو لهبه الی خواویش کنه اما بلال حبشی در مقابل یک جوانی بود که تمام سختی ها را تحمل کرد ایناله تا که بلال حبشی اتو شخصیت خودا بزرگ ساخت که یک سیاپوس بود نلسن ماندیلا 27 سال از زندان ترکت به خاطر از اینکه فقط اروپایی و به ما اعتراف کنند که من یک انسان هستم سیاپوس هم انسان است اما عزت بلال عباشیر اسلام اقدر شخصیت داد که در بین تمام مردم گفت یالله یا بلال برو در سر مقدس مکانی که برای مسلمان ها هست تو برو نخستین اعلامی دولت اسلامی رو در مکه مکرمه تو اعلام که با گفتن آزار و الله اکبر این دین مقدس اسلام وقتی که برای ما که اینی عوامه را بکنین او باز در انسان شخصیت میده خب در بخش جامعه داد احکام اسلام بود در بخش مایات دین مقدس قدس اسلام بر ما امر میکنه نهی میکنه توجیه مثبت یعنی چی؟ عمر و نهی اسلام اسلام میگه که از اینی مشروبات نخورین از اینی مشروبات که الکولیس از این استفاده نکنین خی از چی استفاده بکنیم؟ دین ما قدس اسلام بر ما چی میگم؟ میگه شما از مشروبات غیر از آبهای مدنی از آب میوجات که برای صحتتان برای کامپیوتر وجودتان مفید است از این استفاده بکنیم وقتی که ما از این چیزا استفاده کردیم از هزاران مرض و از هزاران بدبختی نجات پیدا کردیم یک وقت فرانسه اعلان کرد گفت که مشروبات الکولی باید در فرانسه باشد چ از جوان هستن آزادی هست باید شراب بخورن چی نظر دارن؟ ما گفتیم بالا سطها چراغ دارد و بی راه می رود بگذار تا که افتاد و بینت زای خش وقتی که از مشروبات الکلی خوردن اجازه دادن بر مردم این فریدام است. آزادی است نو no problemبل با جوان استفاده کنن FIMIنگ دو خلاص وقتی که من جوان هستم هرچی که دلم شد باید بکنم بکنم وقتی که ای جوان ها را که اجازه دادن که شراب بخورن دیگه روز نتیجه چی شد؟ نتیجه ای شد که گزارش آمد در آخر سال که در فرانسه چند هزار جوان که شراب خورده بودن در اکسیدنتها ها زندگی خود از دست دادن تکر کردن چقدر سرمایه از بین رفت چقدر انسان ها از بین رفتن چقدر انسان های شراب خور چقدر انسان ها را به قتل رساندند؟ وقتی که اینایی ای رو دیدن که اوه هو به خدا زندگی‌خو خراب شد، اقتصاد خراب شد، چندین میلیارد دلار نقص کردیم، پس مجبور میشن که باز قیودی رو بگذارن که نه باید این شراب سرش قید گذاشتهشون. پس مجبور هستن به کجا رجوع بکنن؟ پس مجبور هستن به دین مقدس اسلام رجوع بکنن. چرا که گر همه خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. من میگم که گره همه خواهی که انسان زیستن حتی مسلمان نه اگر میخوای زندگی انسانی داشته باشی نیست ممکن جز به قرآن زیستن تو باید به با قرآن سرتخم کنی و باید احکام خداوند سر تدبیر بکنی اگر میخوای که زندگی انسانی داشته باشی ای در قسمت چی بود؟ در قسمت مایات در قسمت جنس اکتی داد مردم دیگه گفتن والا ما میخوایم که ما آزاد هستیم وی ار فری وی ار وی کاند دو ایوریثینگ اف آی ایم ا یانگ کاند دو من خود جوان هستم از ازش که دلم شد میگم باز هم اینج آزادی های جنسی رو در غرب اعلان کردن ما آزادی جنسی رعلان کردیم آزادی جنسی هر کس دل کس خواست امرو شادی با عروسی بکنن دلش شد کت پشا کاریزی بکنن دلش شد که کرموش ازدواج بکنن دلش شد کت همجنس خود ازدواج بکنن هر جنایت و هر بدبختی را که خواست او را کرد نتیجه از چی شد چی شد نتیجهش نتیجه چی شد که امروز اعلان میکنه که 45 میلیون انسان مبتلا به چی هستن اچ ای ایت خب ایچ یعنی چی HIV یک وقتی یک کس برمای قانون قانون میگفت میگفت که دای قانون که از قتل ترهمی است قتل ترهمی چی مانا؟ منای ما فهمین قتل ترهمیره قتل ترهمی ماناج گفتی است که یک جوان وقتی که مبتلا به ایچ میشه مرض بسیار خطرناک است که خداوند متعال جل جلاله ما و شما را از امراض نگاه بکنه اینا میگه وقتی که به این مرض مبتلا میشه این جوان پیش دکتر میگه دکتر صاحب پلیز کیل می لطفاً مرا بوکوچ چیکسم کش میگه تو بالای من فول باش مهربان باش مهربان به با مهربانی هم کس کس را قتل میکنن میگه آ و مهربانی من مرا قتل بکنه. چی کنیم میگه دکتر صاحب عزیز قربان شما میری می تمام ده پایایید مفتو من پسای مام می تو من ها او بیچاره جان مرا ها چرا میگه خاطر عظیم را میگه بکنش که ما دردم بسیار سقیل است نمیتونم تحمل کنم آه. علتش چیست؟ میگه علتشی بود که ما را اجازه دادن که آزادی جنسی داشته باشم وقتی که در چهار نایت کلب رفتم در اون نایت کلب ها کلش مبتلایان به ایچ دستن مثلا از افغانستان مثلا یک نفر میره اول د افغانستان مګرب 150 نفر اصله نفر نفراله مبتلا به ایسه چون جوان وقتی که ور بور صفت میرسه د خارج برونجا نه مادر مسه نه است، رس نه مولوی مسجد است نه ریش سفیدسته لکن حکم خداونده فراموش میکنه وقتی که خود حکم خداونده ای فراموش کرد اینمی جوان میره در نایت کلاف های غرب چون اونجا دشمنان همیشه برعزی در اموج هم برنامه رو ساختن تا کیله چی کنن ی وقتی کلاپ در اوجه در بین نایت کلاپ، دامی داخل نایت کلاپ کس اونجا مبتلایان به ایتزس. ای جوان می‌رسه ای ماباد وقتی که پس در افغانستان می‌چیه پس خونش که ماینم میکنه ولی مریض است ولی کسالات داره ولا دست خانم نمی‌تونه ولا یه مشکل داره ولی یه مشکل داره نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که او به چرا وقتی که ماینم کردم مبتلا به ایتزس؟ دوا داره نه دوا نداره. بجبورست پیش دکتر برای که داکتر است بکش یا خودش خود خودکشی کنه تا که از درد خطرناک از این خدا نجات بته این ما این اسلام چی میگه؟ اسلام میگه که نه خیر شما تو نکنین اگر ازدواج میکنین مشکل جنسی تا نه نمیگه اسلام که بیخی ترکی دنیا که هیچ ازدواج نکن و اترام اجازه نمیته که ما وقتی که مشکل جنسی داریم باید مکمل چی که دل ما شد باید بکنیم اسلام میگه نه داخل یک چوکات آیات قرآن احادیث پیغمبر را در ازدواجت بخون ازدواج بکو این ازدواج, ازدواج انشالله برای تو سهت و خوشبختی و سعادت هم پیش میره اولاد خوب می داشته باشی خانواده مثبت می داشته باشی صحت تضمین است و زندگیت خوب است اما کسانی که پیروی از دیگران کردن گفتن نه ما می خوایم که آزاد باشیم ما هم می خوایم آزاد جنسی داشته باشیم آزادی جنسی نتیجه چی میشن نتیجه این میشه می که بالاخره این انسان مبتلا به اون یک مرض خطرناک میشه و به مرض ایچ میشه است این از در بخش جنس در قسمت غازات دین مقدس اسلام میگه که ببینید او انسان ها خداوند متعال بر ما شما گفته که اگر شما کدام نیازی دارین با گازها، اگر اکسیژن است، اگر کربن است، اگر هیدروژن است، اگر هر چیزی که ضرورت داری، و یا دیگه چیزای مثل انرژی ضرورت داری یا هر چیز، خداوند متعال بهترین انرژی‌ها را و بهترین چیزها را بر ما در چیزهای بسیار عادی عادی گذاشتن. کجالو بهترین چیزها داره. خودتون نمی‌فهمین. بسیار ارزان است. سیر اشتر بهم میخرم و ی ارزان است مزه نداره چطور نداره حتی دکترها میگن که اگر شما عقل دارین که شالور پوستش بخورین چون میگه بسیاری از چیزهای مفید بر جسم تو در پوست کشالو هست. بادرنگ کته پوستش بخور سیر به کته پوستش بخور حتی دکترها بر ما نصیحت می‌کردن در کشورهای خارجی که بانجان و سیاره که پخته میگنی شما که پوست نگنین کل چیزای مفید وجود داره شما افغانها پوست میخورین وس میپرتین اگر عقل دارین حتی بونجان سیاره کته پوستش بخورین ایناله در بخش گازات خداوند متعال جل, جل و ذات رحمان و رحیم است. خداوند مهربان است. خداوند است که سر کل ما و شما ترحم دارد. از این خاطر گازهای ضرورت، اکسیژن ضرورت بر ما و شما مفت 24 ساعت در هوا. در هر جایی که بری اکسیژن مناسب است. اگر 5 دقیقه اکسیژن در وجودت نباشه، 5 دقیقه اکسیژن قطع شو. خلاص. ولو که بسیار پالوان هم باشی لیکن خدای عزواجل ذات رحمان و رحیم است برای زینا برای ما برای غریب برای کل لگی که روزان 200 لیتر زراد داره مفت برمدان لیکن خداوند مطالبه هست که بیعقلی نکنین خیلی بیعقل کی هست؟ بیعقل انسان سگریتی هست چرا؟ خاطر ازی احمق و لوده هست که دخانیات، دخانیات، مخدرات متاعزین دخانیات سیگارت چرس و چرسی است مخدرات مواد مخدر دیگه چیزهایی که مثلا الکل باب است که انسان نشهآور هستن یار دین مقدس اسلام گفته که یا کلش منع هست غلط است باید نکنین این یک نفر سعی کنن من پیشار گفتم شاید یک تو سیگریتی باشه و بگه که نه ولی استاد چی میگه من مثلا مثال میگم یک نفر میگه عادت داشت هر روز یک یک دون بیر نمیری فاجی که پلته گگر در میداد. دیوان است آخر رفتن یک دکتر دیگر دکتر, دکتر رو گفتن دکتر روانی آمد گفت که باش من ما مالجهش این ای کاملاً امروز گفت چند بجه ی دایره دارم گفت که ولایی امی سوپاکی ساتای عفتنی میشه یک دفعه میره یک دایره میگیره و دارم بودن باز لباسه خودم طرف وظیفه میره دکتر آمد اصلاً عفتنی میشه خیلی شیشه دکتر گفت بوده یک کجا چای برد رفتش چای آورد چای که خورد گفت تو برو یک چند تا سگریت بیار رفت سگریت آور این داکتر دکتر دا سگریت دا پف کرد, کرد, کرد. ساعت سهل دارد دا افتو بیست پنج شد باشت تاریز شوک مید چون یک دیر یک چیز میکنم خب گرفت سابی افتو نیم شد دید که هیچ کار نکرد. در پند دقیق شش صبر کرد در شد گفت که بچه ایم گفت برمخ مردم میگفتم که تو ار روز یک دیر در میتی گفت ها دکترست گفت یک دقیقه که خالی رو در میتونم مرا مردم دو میگه اصابم خراب است امروز همون دقیقه اصاب خرابی میبرای تو در دادم سگرت آوردم تو خوب خدا عالم میگیری و متخصص هم میگیری و داکتر هم میگیری و شخصیت عالی هم خدا میگیری سگرت اونه تو هم دقیقه در میتی سهیسته تو هم دقیقه در میتی باز لودگی تو سه چنده مست گفت <تصفح> مخ یک دعی خالی در میتهم لیکن تو دعی رو هم در میتی ششتا هم خراب میکنی وجود هم خراب میکنی خدا انتحار تدریجی میکنی از این بدن تو از بین میبره از خاطر چون انتحار است، آدم یک دفعه نمیکنشه لیکن آیسایست سکرت انسان از بین میبره تو انتحار تدریجی میکنی. تو دایره هم در میتی و تو محیط زیست هم خراب میکنی تو که کس 4 نفر در موتور شیشه باشی همین 4 5 نفر اذیت هم میکنی چون تو سیگریتی هستی دیگه بوی سیگریت سر جان بعد میکنن. تو رو پروفایسر هم میگن متخصص هم میگن و نامهای بسیار لوکس می‌ذاریم داری که یک دیگه که خاله‌ی خالیده در میتو مرا لعنده میگن اینا بگن که تو لعندسی یا ما لعندسی اینا دین مقدس اسلام میگه درست است. از این چیزا استفاده بکن لکن تو انسان هستی باید از دخانیات دوری بکنی بر از اون که تو چیز را که خدا سرات حرام کرده او رو بگو خدا خوش میشه خدا گفته که این مخدرات و این چیزهایی که انسان اختصارش زربه میزنه، صحتش زربه میزنه، این دخانیات، مخدرات، الکل، چیزای نشا کسی حرام است، لکن اینسان احمق با وجود از, از که کارهای ضد حکم خدا را می کنه، با وجود از خوشحال است میگه والا من چطور هستم؟ ما شما نباید خنده کنیم، ما شما باید ده حالت از یا گریون کنیم که چقدر ما مریض هستیم. چقدر ما مریض هستیم در جامعه خود انسان سیگاریتی چقدر مریض است، نسواری چقدر مریض است، انسانایی که چرص استعمال میکردن چه مریض هستن. کسایی که مثلا مواد مخدره کوکایی، و هیروئین و استعمال میکنند زندگی خود، زندگی فامیل، زندگی جامعه خود رو کُلش برباد کردن. جوانی خود از دست دادن. این اونا فکر میکنن که من جوان و خوشحال هستم. از این خاطر در روز قیامت میگه میشه اینا می انسانایی که همون دوستای احمق می داشته باشه، مگه یا ای تنی لم اتخذ فلانا خلیلا خدای کاش که ما انسان احمق دوستم نمی گرفتم لقد اضلني عن ذكر انبي بود که مرا تبا کرد زندگی مرا از بین برد حسن انسان آقل، انسان هوشیار انسان فامیده انسان دانشمند انسانی که معسل است انسانی که تحصیل کرده و مردم با هستند که این باید خرابی های جامعه را اصلاح بکنن. کسای دیگر که نمیفهمه این باید بفهمه عقیده دگرها که اگر خراب شده این باید جور بکنن. عبادت دگرها که درست است این باید عبادت خوبتر بکنن. عمل کرد از این باید خوب باشه این هم ببینید اینم چیزاش که کار اینم تو ها میشه. از این قادر صدها چراغ دارد و به می رود بگذار تا که افتد و بیند سزای خش علم انسان رو که بان که بفتن شما ببین یک انسان تور بخورا یک انسان که انسان که مبتلا با مخدرات هست این شخصیت داره یک کدام عرضشو در جامعه داره بار دوش جامعه است مکمل از این خاطر دین مقدس اسلام بر ما توجیه مثبت میکنه و توجیه مثبتش یعنی چی توجیه مثبتش یعنی چی است که بر ما میگه که شما مایات جامدات گازات و جنس ای چهار چیزه چه چی قسم استفاده بکنین رهنمایی مثبت میکنه که از بعضی چیزها منع میکنه و از بعضی چیزای دیگه ما رو اجازه میده که باید با, با, با چیزهای وقتی چیزا وقت دیگه ما به این هالندی قصه نگردیم این ایران میمونه آیا گپا در دین شما هست؟ آیا شما مسلمان ها به گپا معتقد هستین؟ بله هستین خشوری را تطبیق نمی کنین. چرا خشوری شما بدبخت هستین؟ به خاطر ازی میگه شما بدبخت هستین که احکام بسیار عالی دارین لکن فراموش کردین صدها چراغ دارن و بیراه همه روین بگذار تا که افتین و بینن صدای خودی خیش اگه شما مطابق دینتان و عقیدهتان و احکام خداوند مطال جل جنوب عمل میکردین شما به هی بدبوختی ها مبتلا نمیشوند اینال این ای شد مثلاً در بخش راهنمایی مثبت در بخش چی؟ بخش مادی وجود انسان اینال ما در بخش معنوی وجود انسان در بخش معنوی وجود انسان در بخش معنوی وجود انسان اینمیره جمع چی میکنن؟ فرمول چی است؟ بخش معنوی وجود انسان جمع چی می نه بخش معنوی وجود انسان که انسان از دیگاه داخلی ضرورت های روانی دارد داخلی دارد ضرورت بارامش داره ضرورت به اطمینان دارد این در جمعه چی میکن رابطه جمع رابطه با خالق قوی مهربان و عادل رابطه با خالق قوی مهربان و عادل حال ما وقتی که بینیم خوب دقیق متوجه باشین ما ضرورات های معنوی داریم ضرورات های معنوی چی مانا؟ ضرورات های معنوی این که امروز مثلا اگه ما پرسان کردیم یک نفر از فرانسا آماده بود گفت برادر در فرانسه چند سال پیش قصه کدگاه نایم فهم که زیاد شده باشه یا کم شده گفت در, در فرانسه هر شب سه میلیون تابلیت خواب استعمال میشه 3 میلیون چرا؟ یک مسلمان دیدن دیدن یکی قصه قسکت امین مسلمانایی که در جماعت تبلیغ و تبلیغ میرن او مسلمان در لندن رفتن وقتی کنون ها در لندن در میدان هوایی است چند نفر که به تبلیغ رفتن امین نفر تبلیغی قرار در میدان هوایی که تیارات تیر میشه قرار خرف خواست کل گیران میمانه که ای از کجا شد ای چه قسم انسان است ما در اتاق خود در بین اتاق دروازار رو برن میکنیم. حتی کوشش میکنیم که اتاق ما مثل یک استا... استادیو باره هیچ صدامده حتی یک بنگس، یک پشه هم باید نبه سر از هم کم یک دا... صداگه که عادی باشه ما را دو سات خبر نمیم بره توی ای تیارات تیر میشن ای علتش از گفتن؟ علت از اینه ای میگه پس که ای انسان رابطه داره با با خدای عزیز وجل خالق قوی این رابطه انسان با خالق قوی نتیجه چی میشه میگه وقتی که رابطه داشته باشی با خالق قوی نتیجه چی میشه آرامش روانی و روحی این انسان آرام می باشه آرام زندگی آرام و نرمال می داشته باشه زندگی آرام و نرمال می داشته باشه این چی پیدا میشه به خاطر از اینکه مرتبه داره ما بر اون نفر آلمندی گفتم گفتم شما سعی کنید گفتم خوده هلند هستی منم سفر دارم به هلند و تو دوستم هستی. صحیح است؟ که تو ارتباط دارم. وقتی که من در بین پرواز سوار هستم میرم به طرف هلند. در پرواز من تشویش می داشتم نه. در دا فکر می است. در فکرم چی است؟ که والا من خود هلند فلانی نفرم میشناسم. نمره تلفنتو زنگ میذارم. ما ساعت 2:00 پرواز ما میرسه. تو میگی اوکی اوکی من انتظار می کنم. من ما در میدان هوایی منتظرتم هستم. محتر بر ماماده است. محتر بر چی است؟ آماده است. وقتی که میخوام برم دکل آموزارش موقت برم مربوط کردن یا مرد دا خانه دار میبرین اینمی ارتباط ما با تو در حالی که تو یک انسان است برام چی نسیم میگن؟ برام یک یک اکارامیشی بسیار قوی چیز می کسی دا دا چی میگن دتای را؟ اما یکی از دکل پولی ما چی تشویش داری میگه ولی ما دوالت درسون بالات نیستم نه این فام آموزار چطور است نه این فام بالا شوم نه فام کجا برو آموزار چه خطر است قیمت آس ارزان است چی وظیفه از کجا کنم؟ کل مشکلات ادر ما گفتم یک مسلمان که ارتباط داره با خدای عزوجل هم در این دنیا آرامش معنوی داره و هم در آخرت وقتی که در میدان حشر میره دگاه پشت پشت و پشت تکسی و پشت فلانی میگرده این مسلمان قرار میگه قبر القبر و من ریاض الجنه میگه خلاص بر من خدا قبر مشکل نیست چرا مشکل نیست دا قبر مار داش دوم اجدور ژاپونیه نه نه نه نه نه این برای انسان های بدبخت است پیغمبر خدا چی میگه پیغمبر خدا میگه القبر و راوزه من ریاض الجنه قبر یک باغچه از های جنت است راوزه یک باقی از باقی های جنت می باشه برای که به انسان مؤمن به انسان که قلب خدا به خدای عزواجل تسلیم کردن کسی که قلبان با خدای بزرگ ارتباط دارد، راوزتون من یادل یاد اما برای انسان های بدبخت بود چیست؟ او خفرتون من حفر نیران یا کندی از کندهای دوزخ می شید. این حالی ایمان بر انسان چی میکنه؟ آرامش داخلی میبخشد. چه قسم آرامش داخلی میبخشد؟ که وقتی که من در دنیا هستم شاعر چی مگه؟ میگه چراقه ظلم ظالم تادمه محشر نمی سوزد. اگر سوزد شب سوزد شب دیگر نمی سوزد. عزیز خاطر انسان مؤمن میفهمه ما کدی که ارتباط دارم کتی خدای از عز خدای عزوجل. او خدای چی صفات داره؟ ذات قوی است. شما سونامی رو می‌بینین که در سونامی بعضی اگر اوی فیلم سونامی رو شما سال ببینن بعضی کسایی که از اروپا و آمریکا میرفتن در مناطق سونامی اونجا به خاطر زنا و به خاطر شب ترکدن هم میگفتن ما ما ما چی هستیم؟ بسیاحت رفتیم و بر ساتری اونجا رفتیم و وی پلژرز ما به خاطر ساتری و عیاشی اونجا می خداوند سر از ناکشت. یک دفعه یک عذاب خطرناکی نز... را زبان کرد در سونامی که اگر شما تصویرهای سونامی رو ببینید چی قاهرا می‌بینید جسد‌های گندهیشان را می‌بینید حتی بدون لباس هر طرف افتادن ذات قوی که اگر یک زلزله کنن کل دنیا رو بر در دو دقه نابود میکنه. ذات قویست که انتقان مرا از ظالم‌ها میگیره اما در پولیزی که ذات قوی هست که دشمن‌ها پیشش سر خود بالا کرده ذات مهربان هست که هر وقت ما برمی‌گوییم که یا از که گردن به من نزدیکتر از پر من میگه مهربانیش به این دادست ذاتست عادل است که همیشه بر من حق ما میده و حق من از ظالم میگیره از این خاطر مسلمان ها بسیاری وقتا بسیاری کسایی که بیدین هستن موتر دارن، خانه دارن، پیسه دارن، زندگی دارن لکن آرامش اطمینان قلبی ندارن اما یک غریبه که بسیار غریب و بیچاره هست هیچ چیز نداره لکن انمی غریب ببینه که با وجود از که بسیار بیچاره و غریب و مسکین است کچالو میخوره پیوا میخوره غذاش بسیار خراب است موتور نداره شاید یک بایکل هم نداشته باشه لکن چیزی داره دم شب دوام میکنه خدای شکر که من کچالو خوردم از پلیسه حلال خدای شکر که من موتور ندارم بایکل دارم از پلیسه حلال خدا شکر که مثلا من شاو در سر یک توشکه عادی خو کردم در قصر خو نکردم که او از خون ملت باشه از خون مردم باشه من کباب ها را از جیب دیگر ها رشوت نگفتم خدا شکر که باز این رشوت خورد در روز قیامت میگه برات میگه از پیش تو گرفته برات میگه که برادر جان در پایه هاییت مفتم امو سدیده بر من ببخش بدا به حال کسی که میگیره من شکر که مکه چالو خوردم، لکن از پيش سير کباب نخوردم. خدای خوب است که در آروسی من قرار یک دو نفر علما آمدند، یک دو دقیقه گپ زنن در آروسی من 20 قسم سازنده و رقاصه و دولچی را بودم که از پيشه چور و از پيشه دوزی و از پيش خون ملت من دول بزنم و برقصم و دیگرا بخورن و باز جوابش ما بدهم. شکر ما اوت و تو پدر نیستم که برای اولادم غذای حرام رو بیارم که اولاد ما از غذای حرام تغذیه شد بلاخره اولاد بر من بلا بگردم خدای شکر ما تو شوهر نیستم که سی طلا از پیسی حرام بر اولادم بگیرم باز مادر اولادا کتزمون سی تطلا در فرق موار کنن و کلمه هشت جای بتر کنن انسان مسلمان با وجود که هیچ چیز ندارن و امکانات بسیار ضعیف دارن لکن از خدای عزوجل راضی هست، خوشحال است. چرا؟ به خاطر ازو که ارتباط قوی با خداوند متعال جل جلاله داره. اینمی ارتباط قوی با خداوند انسان چه میبخشه؟ انسان آرامش میبخشه. انسان سعادت میبخشه. انسان خوشبختی میبخشه. انسان احساس راحت میکنن، احساس آرامش میکنن. چون من با ارتباط دارم که او از همه قوی تر است. با کس ارتباط دارم که او ذات مقدس است که همه کس احتیاج هستند. ذات است که رب العالمین است این دنیا و آخرت از این خاطر انسان مسلمان که هست همیشه از خدای متعال جل, جل و چی دعا میکنه میگه ربنا ای پروردگارا آتنا فی دنیا حسنه خدایا هم بر ما در دنیا نیکی نصیب کن و فی الاخره حسنه و در آخرت هم نیکی و حسنه را نصیب کن و قنا عذاب نار و پروردگارا ما را از آتش دوزخ نجات بده به اجل ای این اینمی ایمان داشتن و ارتباط داشتن قوی با خدای عزوجل این سبب چی بشه نتیجه چی میشه؟ که ارتباط با خدا داشتی بر انسان چی حاصل میشه آرامش روانی الا بذكر الله تطمئن القلوب خلاص این گپ که آگاه باشین که با ذکر خداوند با یاد خداوند با تطبیق احکام خداوند قلب انسان چی پیدا میکنه آرامش پیدا میکنه Stop.